بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد سيد المرسلين و أجمعين أما بعد متنك قرار بخونين سيكون ممكن السريب و بزراء دشفت بشيب نبوة دل قرد الزيور متنها تز از ايامية أهل سنت شيخ الإسلام معروفة بشيخ الإسلام ملقب بالتقي الدين معروف به ابن تیمیه مکنا و کنیش ابو العباس احمد اسمش احمده احمد فرزند امام مفتی شهاب الدین ابو المحاسن عبد الحلیم سید ادریس عبد معروف به شهاب الدین فرزند مجدالدین شیخ الاسلام مجدالدین ابو البرکات عبد السلام فرزند عبد الله فرزند قبل قاسم فرزند محمد، فرزند قیمیه، فرزند خیزر، النومیری الحرانی، سپس دمشقي حملی، مذهب که در انتهاشم میاد مشتهد. در سال 661 هجری افمری، روز دوشنبه، دهم ده ربيع الاول اول به دنیا میاد و در سال 728، بیست هم در شب دوشنبه، در زندان وفات میاد، 67 سال، زندگی میکنن گفته شده که تعلیفات ابن تیمیه به بیش از 500 جل کتاب میرسه اون چیزی که معروف هست از ابن تیمیه تیمیه به نسبت یکی از اجدادش لقب یکی از اجدادش بودیم گفته شده جد پنجمش من نمیخوام تو بحث نسل و نسبش بریم فقط تنها چیزی که اونجا لازم ما بدونی اینه که ابن تیمیه رحمه الله از سلاله و نسل مجموعی از علما بوده معروف هم آل تیمیه مدرسه برای خودشون داشتن و پدرش و پدر بزرگش جز مشهورین علما در فقه حملی بودند و مدرسه علمی داشتن برخلاف حالا اون چیزی که توی شایعات و دعاوی هست اینا یهود بودند، اینا فلان بودند. هر چیزی که قول معروف با طبع بعضی جور جردن اومد جردن اومد فورا بر به یهودی بر برچس به ما اما توی که شیخ عالبانی رحمه الله در اصل حاضر وقتی که اومد صحت و سخمه احادیث رو بیان کرد فوراً گفتن این یهودیه این دخیطه یهود این یهود رو فرسته در بین ماها این تهمت ها و برچهت ها زیاده مادر ابن تیمی معروف به صالحه ست نعم شیخ الصالح ست نعم بنت عبد الرحمن ابن علی اونم بادن حرانی بوده در سال 716 این در سال 716 فوت میشه نامه هایی که امام بن تیمیه رحمه الله نوشته مشهور به مادرش هیچ وقت در نامه‌هاش ناشکری نبود نداشت امام تیمیه همیشه مادرش داد و از خوشیی که داشت از اون دلپوشی‌ای که داشت در زندان و نشستی که با طلبه علم داشت در زندان و کتابازی که می کرد از اون خوشی یاد می‌کرد امام تیمیه اصل آل تیمیه دو تا دسته میشن آل عبدالله و آل محمد شیخ الاسلام تیمیه از آل عبدالله هست. ابن تیمیه خانواده وقتی که شش سال عمر داشت از طوان انتقال میادن به در دمش بزرگ میشه تربیت میشه اونجا بزرگ میشه در زمانی که ابن تیمیه رحمه الله به دنیا اومد اون زمان اوج جنگ تاتار با مسلمانا بود امام تقییه دست گفت همونطور بحث امام گفتم نیازی به ذکر و یاد زهد و تقوا و پریزداری و عفّت و پاکدامنی و می‌خوام از اون فضائل و از اون مسائل بگیم که زیاد وقت نمیشه بعد اون چیزی که برام مهمه که در چه خانواده ای تربیت شده کی بوده پدرش در چه مدرسه ای بوده نشأتش چطور بوده امام تقییه رحمالله الله شیخی که در دمش پیش اونها درسوند بیش از صد تا شیخن اونهایی که یاد شدن و نوشته شده اسماشون 86 تا شیخه در همون بچگیش حافظ قران میشه حساب و کتاب در بچگیش یاد میگیره در همون بچگیش علم تفسیر رو یاد میگیره اصول فقه رو یاد میگیره فقه و عربی و تاریخ و منطق و همه این علوم را میخونه در سن ده سالگی مفتی میشه در سال 677 اجازه فتاوا بهش میده در سن 18 سالگی هم شروع به تالیف میکنه در سن 21 سالگی برای اولین بعد از مرگ پدرش تدریس رو به عهده میگیره در سن 21 سالگی تدریس رو در مرسی پدرش بروده میگیره و مدرس میشه در سن 30 سالگی قرآن رو تفصیل میکن در جامعه اوموی در عمرش فقط یک بار حج رفته موانم در سن 31 سالگی در سال 692 و وقتی که بعد میگرده از حج بنوان امام و مرجع دمشق شناخته میشه اولین سفری که به مصر داشته سال 700 هجری قمری بوده برمیگرده میگرده سفر در سال 705 دوباره برمیگرده به اسکندریه به قاهره و وصفات اسکندریه به مصر را میگرده بین دو دو تا شهر قاهره و اسکندریه و اونم نه بین مردم نمیذارن که بین مردم باشه از زندانی به زندان دیگه در طی 70 حالا میاد مراحلی که در زندان سپری کرده اون چیزی که شاگردینش و همچنین شیوخ که در عصرش بودن یاد میکنن از حفظش همطور که ما در حفظه به هنید گفتیم حفظه ما امیتیمیه مشهور محله رو حفظ کرده جمعه بین صحیحین و صحیحین و اون چیزی که یاد ازش میشه میگه شیخ الاسلام رحمه الله کتابی که میخون همون کتاب با یک بار خوندن حفظ کرد بعد از اون میخواست جمعوری بکنه کتابی رو تعلیف بکنه میگه از اون کتاب نخون میکرد بدونه که یک حرف نه یک کلمه بدونه که یک حرف جا بیفته همون نس را با درقتی خودش نخون میکرد این چیز را ابن حجر در, در میکنه و یکی از اولامو ازش سوال میشه ابن تیمی حفظش رو شگفت چگونه دیدی؟ یک قبته سخر دیدی؟ چقدر بزرگ اون قبه؟ میگه مثل این که صخره سخر پر از کتاب باشه این سر ابن تیمیه و زبان داره این کتاب رو در رو بخونه میگن. یعنی اگر میفاسد حرف بزنه به قول معروف یک صوت جهواری داشت و ها را که میخواد ازش ناق بکنه همون را کامل و دقیق از آن کتاب نخونید. وسپش در نتکش و در صحبتش و در نوشتنش میگن ابن تیمیه اگر موسی علیه السلام عصا داشت به صخره زد رود جاری شد ابن تیمیه گفت که اگر قلم به دست گرفت روی دستری ورقی شروع به نوشتن کرد رود خانهایی از علم جاری میشد از اصول فقه از شعر موضوعی, موضوعی از موضوعهای علمی نیست که ابن تیمیه ننوشته او عجوبه بود در تفسیر او عجوبه بود در حدیث میخواست حدیث رو شرط بده شاید خیلی ها تعجب کنند ابن حجر خاطرنشانوری شده نوشته اگر ابن حجر جای تعجب ابن تیمیه چی هست؟ آدم فقط کافی فتاوای ابن تیمیه را که اون قسمتی از فتاواش هم به همون از پونست فقط پنجل یک پنجل این فتاوا کافی انسانی همین مسئله که ما قبلن اشاره کردند در بحث تفاظول بین آیات و قرآن و صفات خدا بند ابن تیمیه همین موضوع را دی صفحه می ما اینجا در ده دقیق پنج دقیق گفتیم اینجا اما ابو حنیفه رحم الله در پنج خط بهش خلاصه کرده بود ابن تیمیه در بحث همین جدالی که بین قضیه هست بین متکلمین و سلف و غیر چه ادله ها مناقشات میاره فلانی اینطوری گفته این جوابشه فلانی این گفته اونطوری جوابشه با زبان خودشون متکلمین مثلا وقتی که فلاسفه می یا متکلمین می اومد. با زبان خودشون رد بر خودشون میداد عجیب بود اصلا در در التارض و عقل می رد بر عقلانی ها بده تناقضات اشائر و معتدر رو میاد در این کتاب بیان میکنه مثلا میاد میگه رازی این توری گفته رد ردش بر این توری غزالی این توری گفته نقطه تفاوت اونها در بحث حدوث و قدمت اینه نیومده امام این امام رحمه الله با عدل انصاف معروفه هم کلام عادلی بود کلام عادلی بود این که کسی را ظل بکنه تحقیر بکنه مدخره بکنه کتاب معروفه اهل کلام معروفه وقتی ک تو حشوی فک تشویق جهند بغور مجسم میان با القاب با استهزا و مسخره یاد میکنن درسته ما مثلا میگه فلانی جمی به نسبت جهنم صفان چون ایده ایده و فکر جهمو داره نه اینکه شو بکنید به نسبت فکرش میخوام ریشه فکری مجتاز بشه نه اینکه طرف مسخره بکنید بلکه الان طوری شده که اگر اسم میتیمیر آوردیم فورا بر چشپا میاد این وهابیه این نمیدونم سلفیه این تندرو یادم هست وقتی که بحث دکترا رو نوشته بودم مشرفم صوفی بود من بحث تبری رو داشتم بحث مباحث اعتقادی در تفسیر تبری این مشرف اصرار داشت روی وقتی که میخواست انتقاد از من بکنه بهم به میگفت تو سجین ابن تیمیه تو زندانی ابن تیمیه در صورتی که من تفسیری که داشتم اعتقادی که داشتم بر اساس اعتقاد اعتقادات ابن جریر تبریه 400 سال قبل از ابن تیمیه نوشته 400 سال قبل از انبیا امام تبری دارم دفاع میکنم میگه نه تو سجینه ابن تیمیه تو زندانی ابن تیمیه هست چه اتی داره؟ اینو من میخوام بگم ابن تیمیه رحم الله کسی بود که تفسیر را داشت بخاطر خاطر همین ما اصول تفسیر را در میخوایم کسی که اتقان داشت، تسلط داشت بر تفسیر، نه که تنها تفسیر تبری. شما مثلا میبینی جل اون مباحثی که ابن تیمیه در بحث اسم میزنه کلش یا جلش من بگم در کتاب تفسیر تبری دارید. که چون تفسیر تبعی طولانیه شخص سخت میکنه هضمش بکنه اون مطالب رو هضمش من آسان کرده متقی الله راه استفاده از اون منابع را بهمون یاد داد این اصولی که هم می‌خونیم اصول تفسیر به خاطر اینی که ما راه درک و فهم قرآن بلد باشیم بتونین استفاده بکنیم ام رحمه الله کسی بود که اهل هوا و هوس و مثلا خصوصا در اون دوران معروف بود کنیس بود و ازدواج بود مثلا دو الان که نیست مثلا شخص مثل نه زننده دوم سوم چهارم میگیره. دیگه تو دوران قدیم تو حتی تا اجداد خودمون یکم چهار تا زن داشت عادی بود. مثل زمان خودمون نبود یعنی عادیه طبیعیه پدران چهار تا زن داره فلان سه تا اون بود در اون دوران در پدران خودمون هم عادی عادی بود الان ایمان ضعیف شده و تقوی ضعیف شده و مادی شدیم سخت شده این قضیه خب در اون زمان که اینطور شهرت داشت زن یه طرف کنیز یه طرف امير تيميه امی رحمه الله ازدواج نکرد یک بارم مثل امام طبری هم همینطور میگه من شروارم را این بند شروار نه به حرام باز کردم نه به حلال بعد در مقابل زن نه حلالش نه حرامش نه امام تيميه امی رحم الله نجرب اهل بحث زن و درباره زن صحبت دیدید مجالس خودمون چقدر بحث زن میشه هی مجلس میشه هی بحث زن و بحث اهلنا بحث زنام میشه و چقدر زن گرفته و نمیدونم چه طهر مجالس بحث نکونید قد الله عنه میگی جنب مجلس نه ذکر النس مجلس ما زنای شدور بودند خود مجلس رقاعم اني ابغض الرجل يكون وصافا لفرجه وظني بغضش دارم سهابي احنا ما میگه بغض اون شخص دارم که دنبال شکمش و دنبال شهابتش حرف کرد امام مطیم رحمه الله اهل مجلسش با طلاب این هیچ وقت بحث, بحث زن نبود همش مجلس علمی سؤال فتوا سؤال فتوا فتوا میداد سخته فمینه دیگه ثابت نمیشه در جوابش فلانی طوری گفتن شوافه اینطوری گفتن تنابر اینطوری گفتن ابن تیمیه رحمها الله اصل 693 که ابتدای زندان بودن شروع میشه 692 گفتیم رفت حج و برگشت از حج برگشت مرجع شد به خاطر فتواهایی که داد سبب شد که زندان بشه حالا میگم چه فتوایی داد در قیاس زندان شد اولین زندانش در دمشق بود اولین زندانی اساس 693 بین 693 تا 727 تا 728 که تول شده یعنی نزدیک 34 سال بیش از 5 سال در این مدت زندان میشه حالا میاد که چقدر زندان شد چهار بارش در مصر قاهره و اسکندریه و 3 بارش هم اسکندریه و قاهره چهار بار و سه بار هم در دمشق زندان میشه هدفش از رفتن به مصر در سال 700 که بعد از اون زندانیاش در مصر شروع میشه که بوده 4 بار زندان شد هدفش این بود که بره اونجا حاکم مصر تشویق بکنه برای اجداث چون جمعیتی که تو مصر بودن زیاد بودن که جلو توتر بیاد این هدفش مبارزه بود جنگ بود رفتم برای جهاد اهل جهاد از جهاد مثلا جسم و قوتم بحث میشه اونتمی شخص ضعیفی نبود از لحاظ جسمی شخصی برزیده شخصی تیز شخصی با به معروف یعنی وزن خاص خودش داشت در جهاد و با اون صداش و با اون قوت و ذکاوتش اولین باری که زندانی میشه امام متعهدی رحمه الله در دمشق به سبب رد بر اساس مسیحانی بود سبب پیامبر رو کرد بعد زندونش کردن در زندانم کتاب نوشت در رد بر اون نصرانی به اسم کتاب اصفارمون المسعود به خاطر دفاع از بر چون والی و چون عمی اونجا این عساف نصرانی محبوب نزدش بود اومد ابن تیمیه زندان زندون چرا رد این دارید؟ هم ضعف ایمان نگاه به جایی که تشویق میکنن تو داری دفاع میکنی از رسول الله صلی الله علیه و تو سری بهش میزنن میگن من تو با زندانم چرا رد دادی این اولین قلمی که معروف امام در جهادش با قلمش در رد بر یهود و در رد بر نصاره سجر کتاب فقط داره در رد بر احدیده نصارا. برای دومین بار در مث زندانی میشه اونم بخاطر خاطر و صفات خداوند تقریبا نزدیک به یک سال و شش ماه زندان میشه بار دوم در مث باز بار دیگر در بحث توسل ازش فتوا گرفته میشه و رد بر قبوری ها میده در ازای اون فتواش رد بر قبوری ها در مسئله توسل بازم زندان میشه و کتابی را اونجا می در زندان مثل اسم رد علی البکری بار چهارم بازم در مصر زندان میشه و به خاطر همون قضیه رد بر بکری بود به اندازه تقریباً دو ماه بار پنجم بازم در مثل زندان شد هفت ماه طول کشید و چند روزی بار شیشوم در دمش برای که بعد بعد بعد برگش، بعد اینکه برگش 712 هجری قمری دوباره برگش به دمش بعد از اون در قضیه فتوای طلاق که الان بیشتر مسلمان فقط واشن بر همین اینکه طلاق در یک مجلس طلاق در یک مجلس واقع نمیشه این حرف ابن بود بر اساس که صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتند هرچند که بین صحابه اختلاف بودن این قضیه امام ابن تیمیه رحم الله بخاطر فتواش و نوشتنش در دفاع از این سنت که طلاق یک مجلس با سه تا طلاق واقع نمیشه زندان میشه نزدیک به پنج ماه و 28 و روز یعنی تقریبا 6 ماه زندان میشه باز دوباره خاطر فتوای طلاق بار در مسئله رفتن به قصد رفتن به زیارت یک قبر نشه نه اینکه به ها نه سفر مسافرت رفتن قصد قبر پیامبر کردن از اینجا بلند بشیم برم به زیارت قبر پیامبر در رد دیگه این قضیه که رسول الله صلی الله علیه و آله شدت الرحال الا الى ثلاثه مساجد رحال شد الرحال یعنی سفر کردن و مسافرت و قصد سفر درست نگا بر رفتن به مسجد که تو مسجد مکه و مسجد پیامبر و مسجد اخضر اومد گفت این حس را میرسونه درست نیست که انسان بلند بشه برای خاطر قبر فلانی برم معروف بود اون دوران می رفتم به قبر بدوی می به مصر فا امتیمیه الله میاد رده بر این قضیم که درست نیست حرامه رفتن به زیارت خبور به انسان به خاطر همین سه ماه و چهارده زندان میشه رده بر ارتنایی می نویسه اونجا معروف امتیمیه رحمه الله که از رجب یا شعبان یادم نیست دقیقا در زندان که بود بعد از اینکه زندان میشه دیگه ازش قلم ممنوع میکنن دفتر ازش میگیرن قلم و دبات ازش میگیرن بعد از اون دیگه شیخ الاسلام رحمه الله به مدت سه چهار ماه مشغول عبادت و طاعت میشه تا اینکه در سال 728 شجری خمری از دنیا میره معروف گفته ابن تیمیه انا این قتل تو كانت لی شهاده اگر کشته بشم شهیدم و این نفاونی كانت تجره و اگرم اگر در زمین مرا خارج کنند هجرت برای من و اگر مرا بفرستند به قبرس إلى این لول و نفونی الله فواجابون اگر قبرس مرا بفرستان دعوتشون میدم اجابتا ميكنن حبسوني كان لي معبدا اگر ما حبس بكن در زندان عبادت دو هم مثل الغنم كيفما تقلبت تقلبت على سوف مس گستانيام هر جا برم یک گستاندی پر از پشمه روی پشم خودش هست منم همین توریم. هر جا برم یعنی در خوشی به سر میبرم. سختی نمی‌بینم و مقوله ابن قیمی رحمه الله معروفه که من هر جا برم آوادی من بهشت من باغ من در قلب منه هیچ کس نمی‌تونه این آوادی و این خوشی را از من بگیره. این کلاصه و گذری بر زندگی ابن قیمی که گفتم نمیتونیم ما... حق امامت امامیه و اون جهودی که داشته در نصرت سنت نصرت دین در این مجلس ما بخوام بهش اشاره بکنیم و بخوام بگیم و ایفا بکنیم حقش امامیه گفتم یک طرفی شمشیر بده از یک طرفی قلم نده دست امامیه رحمه الله معروفه ردش بر اقلانی ها از طرفی هم معروفه ردش بر موقفی که داشت در مقابل مخالفین اهل سنت که در اون دوران خودش بودند از شیعه و غیر از معتدل و خوارج و غیر معروف دینت کی رحم الله بخدا همین وقتی که اسم از متیعی میشه به عنوان یک مجدد وهابی نگاه طرف میبرن به عنوان یک شخص تندرو هرچند که متیعی همون تو که قبلا نم اشاره کردیم جذاب ترین اشخاص از تکفیر و تندروی بود یک شخص موسمصف یک شخص که قلمش قلم خلام فاحشی نبود قلم تندی نبود قلم تحقیری نبود کسی را تحقیر بکنه کثیر کسی را بخواد به بشموره کسی را بخواد احانت بکنه توهینی بکنه معروفه صلاح الدین ایوبی اشعری بود ولی امام ابت امیر الله ازش بس میکنه کان اخی به عنوان یک برادر از صلاح الدین ایوبی یاد میکنه از میداد به کسانی که از لحاظ اعتقادی بهاشون اختلاف داشت از میداد بهشون همونطور که ازغی به و حنیفه داد و گفت که اختلافمون من اختلاف معروف امام امتوی رحيم الله بعدد انسانفش امتوی الله ان كتاب بسم الله الرحمن الرحيم شروع میکنه ربي يسر و اعن رحمت واسنكم بارودگار وكمتمون من برحمته و بسم الله الرحمن الرحيم آغاز میکنه چون رسول الله صلى الله عليه وسلم نامهاش را بسم الله الرحمن الرحيم آغاز امام بخاری هم با الله الرحمن الرحيم آغاز بدون حمد و ستایش عشان حمد و ستایش نه از باب خدبه حاجت معروفه رسول الله صلی الله علیه و سلم خدبه حاجتش معروفه جایی با خدبه حاجت شروع می الله لا در خدبه عقل یا خدبه جمعه که بعد از معلیفین در کتاباشون با توجه به خدبه حاجت خدبه حاجت آغاز میکنه. و بعد یا با حمد استطایش خدا و بعد یا بدون حمد استطایش مثل من بخاری اینجا امام متعیم رحمه بسم الله الرحمن الرحیم و دعای آسانی و کمک از طرف خدا شروع میکنه با حمد سطایش، الحمد لله نستعیل و نستفر. ازش کمک میخوایم می و سفر میکنیم و به خدا می بریم از شر نفسمون و گناهانمون اون کسی که خدا هدایتش بده، نیست و اون کسی که گمرانه، هدای کننده برای اون نیست. شهادت و جواهم میدیم که خداوند معبود به حکم. شهادت و میدیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بنده خدا و رسول خدا بود. صلی الله عليه و سلم اما بعد فقط سألنی بعض الاخوانیان اکتب له مقدمتا تتضمن قواعد کلیه مقدمه مقدمه یک علمی از من در قصد کردن که در علم تفسیر یک مقدمه نبیسن اصولی که تفسیر قرآن روش متبنی میشه مفترین کتابه مختلفی داشتن با, با, با توجه به چه اصولی اون کتابه نبیسن یک مقدمه یا ازش تفاظه کردن که بینیسه بس اصل سبب تالیفی کتاب تقاضا بوده از خودش نلبتش اومدم بهش تقاضا کردن که بنویسه و ابن امام تیمی الله این کتاب رو بنویسه. اون قواعد کلی که کار بکنه؟ تعین و على فهم, فهم قران که کمک بکنه به ما در فهم قرآن و معرفت تفسیر و معانی و شنافت تفسیر قرآن و معانی و معانی قرآن تفسیر و معانی تفسیر قرآن اون اسباب نزولی که اومده اون وجهات نظری که صحابه داشتن در مقابل آیات تفسیر معنی خود آیه که این آیه به این معناست یک طرف دیگه است اینو با هم دیگه قاطی نکنید همین اینجا سیمی رحم الله تحقیق میده بین تفسیر و شناخت معانی و تمییز فی منقول و و معقوله شناخت تفسیر معسور و تفسیر رأی منقول تفسیله تفسیر مأثور معروفه و معقول تفسیر رأی وقتی بخواد با توجه به صرف و که بحث اعتقادات باشه شنف تفسير منقول معقول بين الحق وأنواع الأباطيل توجه به أن تفسيرك حق مع أن تفسيرك حق باطل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل حد فاصل كيف تقول هذا الأيات؟ كتب صحيح كتب مثل ترجح بدي فإن الكتب المصنفة في تفسير القرآن مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين چرا چون ما کتاب ها ببینیم کتاب های تفسیری که نوشته شده بین حاشیه که خارج از بحث تفسیره و بین خود تفسیر که اشتباهات یه طرف حق هم طرف ما نیاز ابزاری داریم که بتونیم بفهمیم حق باقیه این مفسر اینطوری میگه اون مفسر اینطوری حق با کدوم یکی از و العلم اما نقل مصدق عن معصوما و اما قول علیه دلیل معلوم علم البته بماراتیده يا عبد رسول خدص صلى الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل معنوي يا قوله كدليل مشخص ولا دليل الصنعة دليل أقوال الصحابة هس استدلال شو وضعه وما ذلك فإما مزيف مرد فغيره يا دليل مردود ودليلك باطل بدونه وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود أحواله دي كموقوفة و اما موقوف لا یعلم انه بهراج ولا منقود یعنی شنق اقوالی که به صحابه نسبت داده میشه صحات سوق مش ما مشخص نیست مثلا شما برید تفسیر تفاثیر رو کنید مثلا از ابن عباس میشه که گفته استوا استیلاس و از ابو العالی میشه و ابن عباس آنها میسر که گفته استوا معنای علو و ارتفاعه کدوم یک رو بگیری. خب وقتی که ما میام به اسناد بررسی میکنیم میبینیم بله اون گفته ای که نقل میشه اون گفته ای که نقل شده از ابن عباس گفته استوا فی و وضع دروغ و دروغه موضوعه دروغه کذبه محض خب خیلی ها که آشنایی با سند ندارن گول میخورن تریف میخورن ولی فلان مفصل در کتابش آورده امام تبری در تفسیرش آورده خب آیه امام تبری صحت صدق مشخص کرده نه مشخص نکرده. نه گفت صحیح نه چون امام تبری استقرانك از علم رجال و تسبیق و نداده بر روایتایی که نقل هم در تاریخش و هم در تفاسیر همین به مجرد اینکه خبری نقل بکرانه میشه بشه اعتماد بکنیم خیلی از اخبار دروغ رو نقل میکنه امام تف... امام در تاریخش و همچنین در تفسیری صحت و سوق مشروما ما گذار کرده که ببینیم تحقیق بکنیم خودش گفته شده نقل کرده با اسناد تا اینکه ما ببینیم بعدن اسناد بررسی بکنیم و صحت و سوقمش بفهمیم چه را اینجا امام ابن امام متوی رحمه الله گفت که تفسیر یا حقه یا باطل. نگه میشه تفسیرم باطل باشه؟ نه کنیم. حالا میاد بحث به تیمی رحمه الله در بحث انواع اختلاف. اختلاف تنبوع اختلاف تزاد میاد. غیر ممکنه استوا هم به معنای استینا بیاد استیلا بیاد به معنای چیره بیاد. خداوند چیره شده بر مخلوقات. هم به معنای علوم بیاد. غیر ممکنه. الرحمن عرش استوا یک آیه هست. دوتا معنی متضاد همه جا باشه یا بالای ارز باشه هر دو تا با هم نمیشه یا بالای هر یا همه جا باید یکی حق باشه باید یکی حق باشه یا خدا بالاست یا بالا و پایینه باید یک حق باشه کدام یک حقه یکیش مستندش دروغه یکیش مستندش صحیحه حق نمیشه دوتا باشه اینو باید ما به نظرمون همیشه بذاریم خداوند در قرانم اشاره بی میکنه الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور تاریخی ها باطل زیاده ولی نور حقیقیه. ظلمات نور نور مفرد قرار دارد ولی ظلمات زیاد قرار داد دین خدا راه هدایت و ان به صراحی مستقیما فر تبعه راه مستقیم یکیه ولی تتبعه الصبل. صبر راه های گمراهی را زیاد رسول الله مثال میدنه یک مربعی را میکشه از وسط مربع خطی می میکشه بعد دور این خط بلشه یه خطی رسول میکشه که یه خطی را میکشه بعد دربر این خط خطایی میکشه میگه این راه خداست و این درهای شیطان صدا میدنه بر هر کدوم از این راههای فرعی شیطان بیا به بی این طرف بیا به بی این طرف راه حق یکیه ولی راه باطل زیاده ما باید بفهمیم تفسیر یا تفسیری به حق یا غیر حق حالا چطور میتونید تشخیص بدید که تفسیر حق نه حق این وسیله تفسیری رو امام تقی الله می نمیزه. ميگه وحاجت الامه ما إلا سلاحها القران خيلي ما نياد من ضرورييه كه قرآنو بفهميم اونم فهم صحيح چرا حد الله المتين والذكر الحكيم والصلاه المستقيم حمل ارتباتيك بين ما خدا هست اون ريزماني و نجات پیدا بكنيم و اون هدایت بشيم به بهشت برسيم پس خيلي مهمه كما حق بهش بچسبيم نميشه كه tạmينتوري بگيم عقیده فَرَارِیسمو داشته باشین بگین که نه همه راهها به طرف خداست مثل صوفی‌ها قولات صوفیا هر راهی به خدا میتونه آدم مشروب بخوره به خدا برسه میتونه آدم دزدی بکنه به خدا برسه هر راهی میتونه به خدا برسه نه راه حق یک راه و نه مطاعت و کشفیدن مسکم کشیدان اونم کشیدان عضو علیها بالنواجه برسه نحل علیکم بسنتی و سنت الخلافای راشینه. من بعد عضو علیها بنا ستساق بنا عندنا هنوئي أصياب بين حبل المتين بجأس بي. الصراط المستقيم التي... الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الغد قرآن يجي حبا وهبس هو أباطيل نميتونان حقيقة رأيكم بكثنا نميتونان هر شقد بخوت مثلا الشهر تحريك معنی قرآن رو عوض بکنه نمیتونه حقیقت قرآن رو پنهان بکنه هر چقدر تلاش بکنه مثلا همین در قضیه استوا که ما گفتیم هر چقدر تلاش کرده که معناشو عوض بیارن بکنن نتونستم. بر روی زبانم همینطور. طور نمیتونه نطقش عوض بکنن خداوند یعنی میخواد بگه خداوند دیگه گفته نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون هم حفظه قرائته هم حفظ فهمیشه مگه میشه قرآن لفظش حفظ باشه فهمش حفظ نشه خب چه چه به میخوره قرآنی که فقط ما تلاوتش بکنیم بر سر زبان حفظش بکنیم ولی در قلب درکش نکنیم به درد میخوریم قرآن؟ قرآن به درد نمیخونه حدایتگر نمیتونه باشه این قرآنی که فقط بر سر زبان تلاوت بشه نکنیم درکش فاید همون دور که قرآن تلاوتش حفظ شده درکشم حفظ شده ولا اخلاق و علا کفت رو قرآن کهره نمیشه همیشه نور. كل شيء يسمى يمكنك إستفادة ميخنين. ولا تنقضي عجائبه عجائبه قرآن انتهاينا داره ولا يشبع منه العلماء أهل عين يشبع القرآن سير نمشى فسول الله تعالى سلم يقول ليس لك القرآن قلنا نستلوات القرآن شب شيء قد قيام وتهجدني سيد القرآن من قال به صدق ومن عمل به وجه تسيك سبانش نطقش قرآن وشه مش صادق ندره كجا ما بني دوز أهل قرآن وشه سي بيدي. انسانی که رفتارش قرآن با قرآن اصفحشا منکر دور میشه. این اطلا هرچند که شاید اهل قرآن باشه قرآن بخن منحرکا بشه که اون روز و مدم جزء بلنکسانی که حساب و من عمل به اجه بل من قرع من کتاب الله فله به حسنه و الحسنه امثالها از قرآن بخنه حسنه داره هر حسنه ده برابر میشه صاحب ده برابر لا أقول ألف لام حرف نمي كم ألف لام حرف ألف حرف لام حرف در مقابل عملت بقرآن أجر و ومن حكم به عدل اگر قرآن قرار ده بحكم قدواندي در حكم تعادل میشين ومن دعا إليه هدية إلى صراط المستقيم ففي كدابتش بسیو هدایت قرآن باشه اون دعوتش به صراط مستقیم من ترکه من جبار قسمه الله کمرش خورد میشه اون کسی که قرآن رو بکنه به عمل نکنه و من ارتغال الهدى في غیره اضلله الله کسی فکر کنه راه هدایت در راستوهاست فکر میکنه که قرآن کفایتش نمیکنه اون شخص چیه عین گومراهه اضلله الله گمراهه گمراهه اون کسی که فکر بکنه راه شعرا و گمراهان راه هدایتشون هست قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعمى هدايتي أزمن ما كسي في ربع هدايات شوت يشبه بمراهن فلا يضل ولا يشقى شقوات من نمشه ومن أعرض عن ذكري كسي في عن الذكر قدر شبت لابات شبه أهل القرآن نبو نرى في دمضل تفسير مهمة اعراض از ال... تلاوت اعراض از فهم اعراض از سلم علم بسترین حرمان این هم بدونید خداوند ما را انتخاب کرده در این مجلس نظر رحمت و لطفی داشت من یورد الله بهی خیرن یفقه و بدی کسی که اراده خیر خدا بهش رسو باشه فقه در دین بهش میده و بزرگترین فقه فهم خدا قرآن که کلام خداوند برای ما وحک کرده بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تلاوتش ما فهمش رو برای ما حذف کرده وقتی اعراض میکنه از سرابت قران از فهم قران فان له معيشة قنطه اون زندگی سختی خواهد داشت زندگیش پر از دلتنگیه چون آبادی دیگه تو اون زندگی نیست قبرستون زندگیش قلبش و يوم القيامه روز قیامت نابينا وكور کور تاشو میشه تو چشش باز نبود چون قلبش قفل کرده بود از تفهم قران افلا یتدبرون القران ام على قلوب اقفالها نمیخوام قرآن درش تدبر بود کسی که دنبال تدبر در قرآن نباشه خودش خواسته که قلبش پلوم بشه خودش خواسته که قلبش خوف بشه قلب رو نباید خوف کرد باید دنبال کلید بود کلیدشم قرآنه کلیدشم فهم قرآنه قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیره شلنا بنا مرا حش کردی بسیر بودم میدیدم بنا بودم قال کذالک اتفک آیاتنا وكذلك و کذ آیات مان ومان فوش به اشتادی نسیان اینجا مانید فوش دادنه اینجا هم ما بهت فوش مدین تره ترخ میکنیم رحار میکنیم آیه دیگر نیمه قال تعالی قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین يحدي به الله من اتبع رضوانه صبول السلام و يخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه و يحديهم الى قراط مستقیم اینجا قب لقد جاءكم من الله نور من الله نور و کتاب بس قرآنه نور و کتاب مکتوبه نوشته شده و این نور توش هست نور که قلب را روشن میکنه از تاریکی ها یهدی به الله من اتبع رضوانه صبل السلام با این قرآن راه السلام و راه نجات رو به سان نشاط میده نجات میده از تاریکی ها به انسان نجات میده به سوی نور به سوی صراط مستقیم به اذنه و یهديهم به اذنه اینجا مد نظرتون باشه تو آیه بعدم باز را مد این به اذنه با اذن خودش قال تعالی الف را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا من جاء خداوان. وإن قرآن هداية بدر صارك بروشنائي بإذن خودش، باجذية خودش، بامشيئة خودش. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. خداوان ذيك خداية إن كتانيها تدر أسمها وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إن كتير روح امر خودش اون زندگانی قرآنی که دربش روحه انسانو زنده ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان یعنی قران رو زندگانی میکنه به میکنه ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان نمیدون چی کتاب چیه ایمان چیه ولكن جعلناه نورا نهدی به من نجبا من نشا كت بغايب با این قران من عبادنا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إلى الله تصير الأمور شرع إن مشيئت دال إنسة آيات دالقرآن تكرار صوت بالنور هدو يكون كتور جنب بأني بني إن قسمة آيات نور نهدي به من نشاء وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم قسمة أول قسمة أول نور نهدي به من نشاء نفي مشيئات ونفي توفيق الرسول الله صلى الله عليه وسلم هدایت گفتی چند نوعه؟, نوعه؟ هدایت دلالت و ارشاد و هدایت توفیق قسمت اول، وقتی گفت، من هدایت میدم کسی که بخوام با این قرآن یعنی رسول خدا تو کاری نیستی، دست به من هدایت قلبان و بعد که گفت، تو هم هدایت میدی، تو هم هدایت میدی، چه نوع هدایتیه؟ هدایت دلالت و ارشاد این نوکنین وقتی که ما با بادقت نگاه آیات می کنیمیم خدممات را کنار رو هم دیگه بگذاراریم میتونیم این مفهوم درست رو ازش اصباعیل من حج اهلتون نکن که بین خصوس جمع میکنن و بعد به یک عاعده منضبطی میرت به خاطر همین هیچ اختلاف اعتقادی به طلف نمی بینیم. بر خلاف خللب خلف ابر حسن عشر یه چیزی میگه ابو مسعود متری یه چیزی میگه و اصله نقطای یه چیزی می که جبایی چیزی میگه بین ح رااض چیزی دیگه میگه. می بین غذا چیز دیگه میگه, میگه. حطف یه چیزی تعبی میده. چرا چون با عقل و سلیقه شخصی خودشون اومدن دیدگاه شخصی خودشون بر قران شوک کردن بعد میگه وقت کتبت هذه المقدمه مختصره بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد والله الهادي الى الصواب دیگه از فؤاد قلبم نوشتن فکر نکنید که مرجع کتابا در دستش بوده نوشته از حفظش اما متولد رو میگه از مختصر مختصره آسان نوشتم که ازش استفاده میکنید و این قد اکتفا میکنیم ان شاءالله بعد دوباره با هم ادامه خواهیم داد. و محمد صلی الله و